بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الله علی علیه سیدنا رسول الله و آلیه خیبین طاهرین المعصومین ملعت الدائمت و علا اجمعین الله و فرمان جمعی المشترین بحث راجب مناسبتی که آیا قیبت جذب کباید هست یا چیزی بنابرای شد یه موضوع به قیبت کباید بخونیم که ماشالله زیادم شد و دیگه یواشواش باید بحث رو جمع کرد و واضح بحث خودش شد در تطویق قیبت و کباید پس کنم خدمتون که روایاتی که در این جنب بود از کردیم متعبض شدیم اون وقت منجم در این روایات در همین باب چهر و شیش عباب جهاد و نفس صاحب و سائل که بخواستیم بخواستیم که این کتاب حالما موجوده از این بکنیم چون بعض از اینها با ای اختلاق نصف و قصف بیشتر در جامون احادیث هم آقایی مثلا اونجا هم هیچ پاکی که من دارم دردن جده شمزه بی در جامعه شماره 22 محمد ابن علیه ابن حسین الله تعالی که صدوق پسر باشه صدوق معروف به اصناد علیه ابن حسان ام عبدالرحمن ابن کثیر خود علیه ابن حسان امیدشان و حاشنی. هر رو تضعیم شدن و انصاب هرم خیلی حجیب غریبه به همین قرط غلوب هم میخوره اون وقت این روایت با یک روایتی که رو دیروز در بخص دیروز خوندیم این جز به است که احمد این مستانه نسبت داده شده که به امام نسبت داده شده که تطویق خرمدن کبائر رو و افعالی که و کارهایی که امت با اهل بیت انجام بدن خب مثلا خود صدور ضد خط قلوبه معروفه دیگه میاند صدو خیلی در برم. اما این روایت که ظاهرش واضحه که از خط قلوبه من ازاله که روایت نه چیزی نکته‌ای هست که گاهی اوقات ما دقیقا نمی تو همین بحث اولی که در اصول بود هست خریم یک معنایی بود که حجید خبر استقره حالا یا حجید خبری که مشاریخ نهار بکنن و مرموم یونوس ابن عبدالرحمن خبری به حجت نیوز که علی اشاره کن و شاهدان این کتاب و ارز کرد این قومی با یونوس مخالط بودن خود صدق هم میانه خوبی با یونوس نداره مجموعه از کتاب یونوس را در فقیه ده مورد مثل اجموع مورده مورد یا زه مورده چیز خیلی کمی ما اون جلالت شعن یونوس این ظاهرش اینطوره یعنی ظاهر پسه این است که مثلا یونوس حدیثی رو قبول میکنه که علیه شاهدون کتاب الله و صدوق نه ربایت رو, رو قبول میکنه که برای شواهد کتاب الله نباشه تو همین بحث کباهر ظاهرا این دو تا هم دیگه عمل کردن تو همون باب 45 حدیث اول از یونوس بود بله یونس ابن عبدالرحمن ایشون گفت که معرفت طور امام از امام نرده معرفت طور امام و شنابول کبائه معرفت طور امام و شنابول کبائه این طوره لیکن صدوق نرده منشتنه بر کبائه رو الله خلال با خب این چیزی که صدوق من کرده با ظاهر آیه بهتر میاد اونه که با ظاهر آیه میاد بهتر میاد مگر تو اون تفسیر ممنی اوتر اکمه است فقط اون تیه خیرن کسی را علایه حاله و همون جا هم ما داشتیم در همون روایت در همون با بله سمه الله و عمل صالح و لمجه سمه مثلا در همونجور در کتاب و صفات شیعه باز عبتونم باز صدوبه و اقره به رجعه وشتنه به رجعه یعنی رجعه نبود در متعتین و المساره و البلحوز اشتفایه و خلق الجنه وشتنه به کبائر دخل الجنه ظاهرش علایه حاله این طوره یعنی اینطور انسان احساس میکنه که مثلا اونجا به عکس شده بعد حال مرموم صدوق این روایت رو ابرده و جانب تحویلی گرفتی که خب خلاف زاره بوده محسوسا این جانب تحویلی بیشتر مال خط قلوب بوده با اینکه آزا صدوق بوده معروف بوده که نفی قلوب خیلی جزء قومی هایی در نفی قلوب خیلی حساسه الان در کتاب در کتاب صحیح این حدیث رو نقل کرده در جلد سوم کتاب صحیح ان ابي عبد الله ان الكبائر سبع فنان اون زل و مناء سهلا از چندین دوستا داریم که تعلیل کرده یکیش در کتاب صحیح آمده و اونجا متعرض شدیم صادران که چون ابن ادریس به شیخ اعتراض میکنه که کسی از اصحاب ما این مطلب رو نگفته این مسئله کبائر و سوارد که مثلا اصحار در سخیزه نباشه شهادتش همز کنم که درسته مطلب مندیس هم چه مدیس دارم تطبع زیاد نباشه خب این من جلو خود شیخ صدو در این محلق رو عورده شخصدو رحمت الله بحث کبائر رو عورده این کبائر سوار بعد که مراجعه کردین اشون معرفت کبائر بعد از باب طلاق رو عبوده. من نمیدونیم صدوش همه آقاً نمیفهم شاید مرموم ابن الیس نگاه کرده به کتاب و شهاداد. دیده تو زیر باب و شهاداد که سینور شیخ برده رضا سکر شیخ منطرده پس حالی جانه یه آشهاش مخیرم بحثم بشیم بحث به فردی مرموم شیخ کولینی تو اصول آورده که احتمالا ابن الیس ندیده شاید مثلا فکر میکرده کافی کتاب وردیسه ایشون هم ک در کتاب فرید در جلد سه آخر جلد سه بعد از کتاب طلاق تمام میشه بابا نواده بگاره هست کنم سبو به ها کذا معموم شیخ موفی بعد از که یک کتاب تمام میشه مثلا کتاب طلاق سلاط زکات هج یک بابا نواده بگاره نواده رو هونجا میاره کل این در اصناع میاره آخر کتاب نمیاد. این توضیحاتی سابنه داره. این نواظر طلاق ایشان که تمام میشه با معرفت قبایل الکی اوجرا رو با حاله عنا خیلی آتشین بذره شود مثلا شود طلاق با بین عادل باشه اشیرش باشه خیلی منجوره شاد ببین مناسبت علاوه حال حتی اول انسان خیال می کنه جز نواظر هستند نواظر طلاق درحال مربوب در درجه باب طلاق آورده کتاب طلاق تمام میشه نوادر داره نوادر تا تمام میشه با معرفت کباه علتی اوجه الله علیه هم نار عنوانشم همینه حالا چرا ملحق به نوادر کرده اونم نیم و روایاتش زیاد نسبت هم روایات زیاده او و اون نقطهی رو که من عرض کردم اینجا هم انسان با روایت احساس میکنه ولی صدو خودش نگفت یعنی به عبارت اخرام صدوه معیار کبائر رو این میدونه ما اوجبالله علیه هم نا خودش میگه باب معرفتون کبائر علیتی اوجبالله علیه هم خودستان اون باب و کبائر وقتی کتاب بابش نگاه میکنی خیلی از نادش نار نیست شدت هست نار نیست باز یک مشکلی صدوه عنوان بابش با روایاتی که اگه آن اگه نگاه کنیم جلسه تمام میشه به همین کوابه. بعدن یه باب دیگه شروع می کنه بعدن تمام میشه به همین به همین کوابه تمام میشه. ایده از رو خود اصلا قیبت نیست توی مجموعه کوابه قیبت نیست. این که الان مرحله شاهده ما قیبت داره برگردیم به شاهد خودمون. ایده از گناهان رو آورده که مثلا تو این روایت سبع اورغات، تس اورغات، 20 و, و تو این ها نشده. اول آورده و در بعضی هم تشبیل هست اما جلوه کبائر نیست یا توش نار نیست بعضیش داره مثلا نه مثل آتش مثلا این الله و رسوله در کبائر تحبیرش اینجوری قاله بلانه و این داره این در این کتاب صدو رضوان الله تعالی داره من احتمال میدم ولی علم و مرموم ابن عزیز تو شهاداز صدوق نهیده لذان کسی نگه برده راست توی شهاداز نید اینجا آورده و خیلی هم عجیبه یعنی واقعا تعجبابه که در ذیل کتاب تلافیشان آورده این یه دو عزیزترش هم که روایت که در کباه رو برده در طرح آسیدگه هم آورده مثال این نداره اون روایت همه ابن عبید هم آورده مفسر روایت عبدالع عورده اما این روایات تعلیلی هم عورده که عادتا از خط بلوغ به حساب میانن اصطلاحا در اون زمان این جور روایات تعلیلی رو آسال خط بلوغ میذرسن دزا عرض میکنن مثلا ما به ذهن میاد که صدوق و استاد ایشان خیلی شدید باشن در باب بلوغ مثلا در همین یه علم اهل مفاضه خدایان الله هستند یعنی از مفاضه در عبارات ایشان بلوغ مراد از مفاضه در عبارات ایشان جب و نیست در اون زمان به هم مفرزه می گفتن, مفرزه. مثلا مثلا گفتن مثلا این هم هم در مفرزه و از چی مصر این هم غلاط گفتن و این اشهر در مهگی امروزی اگر را را که اما اینجا این تعویل کباله که همه رو برگفت به اقل بگید از به خاطر به اون به هر حال این روایت در کتاب صدوق آمده در دو سه کتاب دیگرش هم مصنده نقل کرده که اون سنده هم خرابه فعلا میخواهد اینجور این روایت سنده میخواهد اون دو نفر خودشون کافی هستن و اموش هر دوشون و جور نیست کافیه بعد داره که رواه المفید المعنع مرسلم مرمون شیخ مفید هست، این روایت رو اینم اینم عجیبه چون مرحوم شیخ مفید اون روایت مفرد از شیخ صدوق روایت مفسر عبدالعظیم این آورد تو کبائره ایشون در کبائره هم نیاورده که این روایت ترویلی است عجیبه هر مشهدی مفید چون واقعا برای ما تعجب آور بود که چطور مرحوم ابن ادریس میگه شیخ فقط در اینجا در کتاب مبسوط این بحث کبائره را اداترا اداره مطرح کرده کسی از اصحاب نداره خب این تجربه برشته میشه چون که کسی... خب تو موقعی که مفيد از حضرت در موقعی شیخ مفيد این رو روایت هست همین روایت تعدیدی اسم نبرده سعد الرحمن نکسی را بیان نرسو. ما این روایت ورده این یکیش و البته مرحوم آي رباني که ببین ای که ما داریم نوشته العمونه نسبت به نقطه به شیخ بده راستن مرموم شیخ موفی در ذیل کتاب خمس و زکات قرارده <تصفح> باید عجب کنه این هم چیزه عجبیه از کلم شیخ موفی در مغنعه بعد از کتاب که تمام میشه بابو زیادات داره یا نوازی زیادات داره کتاب خمس و زکات و انفال که تمام میشه بابو زیادات داره ایشان یا بابو نوادر من الان بزن صبح نوازی رو بزن ترین برامون که داشته شده اونجا بابی بینام باب زیاددار داره این حدیث اونجا آورده ظاهر سرش همینه که مثلا عکل مالیاتی این هم فرح انوال ما رو خوردن مثلا خمس و انفاب اینها به این, این مناسبت محروم شیف مفید این رو تو باب زیادات یا باب نواده رو آورده و از کلان صابقا محروم شیف مفید رساله ای در باب رؤیت اقلاب به ایشان نسبت داده میشه که اسم صحیحش رساله جوابات اهل موسیل اسلامی هست ایشون در اونجا یک مناسبتی بگه این حدیث رو علمای ما در عباب نوازه رو که موضوع است جمع شده قراردادشون بناشون به اینه که در این باب روایت زعاف رو وارد بکنن خودش موید مطرح مگه می کنیم رساله رو اشکار بکنیم چون رساله به این هم اجاده ما رسیبه و از قرمه ترون 11 هم رس که مرموم رسال در موجه زیاد اسم میشه بنام رسال قال شغل مفید تا رسال تا عددی ایش رساله عددی هم در این اسمیست که مرموم حاجی نوری واقعیت اسم رساله همین رسالات جوابات احریموس موس افثانیه تل عرض وقعیه تل در این رساله چونی از درمی یادنه هم به ما رسیده بزرگواری هم که نرکرده میگه من فکر میکنم مفید باشه اسلوبش و انشارش به مفید بخوره و لذا الان نمیتیم نسبت دید اما به هر حال این طور آمده و شواهد به هر و از کردیم یکی از مشکلات این وسائل متاسفانه گایی چرا من رو مایده کنیم کلی متعرض نشدن گایی بعضی احادیث با اینکه مشهور هست از کتابه فقیر نه فران تو همه عباب و نواده رو چه که متن کتاب نیست تو باب و نواده این خوب بود و همه هم ناقل که دارن تحقیح میکن کتاب حالا خود محرون سال و که این کار نکرده وافی هم این کار نکرده بهار هم این کار نکرده اصلا به نیستم محمد نهلی نوسیم در فقیر باب و نواده که انسان بدونه که خود شیخ صدوق این حدیث رو خیلی نداشت. در کتاب شیخ صدو بلافادره بعد از نوازر طلاق در کتاب شیخ مفید که نماز نوازر کتاب خرمس و زکات و انفال و این هاست اما اون خود نوازره یعنی در کتاب مقنعی شیخ مفید در خود نوازره اصلا ونین انتماع داره که محوم ابن ادریز که میجی در اصحاب نیست اینجا ها رو ندیده یعنی خب احتمال هم ندیده تو بابوش آداد کرده بین سراس تو بابوش آداد نید لذا محبون آره ابن ادریز هم که یه امعادت تو کامل کامل کردن و آره فقط پرد اکتفای کردم به نمول اعتبارات ابن که به کرده هم بکرده و آره خوندیم اوازهای خویی بودیم عزدید. و باز هم آرخویی متعرض نشنن به که علامه در ابن ادریس داره خب خوب بود بود که ابن ادریس دارتی ابن ادریس رنده نمشن متعرض رده هملاما در, در ابن ادریس هم در همین جا ابن در زیل همین مسئلهی نرکبائه و سفائه کلام ابن ادریس رد میمونه حالا خلاصه مسئله ابن ادریسی نفسه شروع برای شروسته نیگه که از خابه همچه این وقت و ننرشتن نعه بردن شیخ هم اینجا از کتاب اهل سنت گرفته تا دنبال اونها افتاده راست این مطلب کتاب محسوس از کتاب اهل سنت حمله میکنه به شیخ که شیخ رو دون این مطلب رو از اهل سنت گرفته اون نقطه ای که شیخ هم از سنت سنت گرفته چون اهل سنت بحث ازالت تو همین شهادات آوردن این هم درسته توضیح هایی سابقا نهارم کردیم چون فقره هرستانده فقره حکومتی هم بود بینیم بحث محبت ادالت به احراض ادالت به شهادت به اینکه که و ولذا مثلا در هر محملهی در هر منطقهی شاد و عرضی بودن مثلا که اینا میامدن و معدل که مثلا این آقا معدل بود این کارش تعدیل شهود بود که این شهود آیا مثلا آقا ما داری مثلا بررسید در هر زمانی فرصم شما یکی کسی نمازی باید نسوشید با سه چهار جهد وجه جهات متعددی بررسید کنی که این صلاحیت داری مثلا یکی از جهاتی در حکومت ها اون وقت بود در حکومت هایی در خود دنیای اسلام تعدیل شهور بود لذاب به لحاظ تعدیل شهوری مثلا می گفت که این آواز عدیده یا گاهد نیست بحث های متعددی بود مجر می گفتن که آقا باز سببش ازش سوال بکنی آقا مثلا گفت عدی گفتم تو از کجا میگی عدی چی میگی از اون مثلا یا اگر گفت عدل نیست یا چرض میکنه سبب جرم رو گفت تو معالم بعد این بحثا داره شده در جهتتون نباشه آقا سبب جنگ باشه، میشه سبب تعویض باشه، اینا مباحثی بوده که اینها که بحث شهادات مطرح کرده و مقلب مدیس درست شیخ هم در مقصود از شهادات احل عامه گرفته پس معلوم شد که این کتاب بحث کبائر و سبائر در کتب ما خیلی جا به جا بحث شده بلیشنی شد؟ بله بعد بحث منظرش تو همون شهادات شد تو کتاب کافی توی ایمان و تو کتاب صدورده کتاب طلا تو کتاب مقنه شیخ مفید زینب است زکات و خمس و انفاق آورده تو نوادر اونجا میده خیلی هم عجیب انصافا توی خود کتاب وصایای جهاد و سایل جهاز نفس آورده تو شهادت نیآورده ایشان تو ابواب جهاد و نفس آورده به هر حال اما این مطلبی رو که ابن الریش میگه کسی قبل شیخ نگفته معلومه که اینا درود نیست قبل از شیخ گفته اون سم ماقتی گفت ابن الریش میگه کسی قبل شیخ نگفته بله تو کتاب شهادت هم بلکه این احنای باید داره میخونی تازه کلیه باید هم نیست چطور میشه این کسی قبل از شهر نگفتی این مثلا مفرح نشدی؟ علایه حاله قال و رویه این مراسیل مرمون صدوبه و حدیث شماره 24 و به اصنابیه ان احمد ابن نظر ان اقباد ابن کسیر نظر قال سلط و جعفن عزقبائه قال کل ما قوعد الله علیه نه از کردیم مرمون صدوق به کتاب احمد بن نر تریق نداره به نوشتار احمد بن نر این توضیحش هم زادی. بحث خودی هم, هم. نمیدونم آیا خود پایی در بعضی ها راجب صدوق و مسائل مسائل و, مسائل و, مسائل و روایات صدوق و این که این کرده بعضی کتاب ها نوشته شده حالا چون نمیدونم از کردم یک فصل مشبه ای رو در این متاخیلین ما به لحاظه متاخیل کلی بخصه یه رجالی نوری تو خاتمه مسترک داره خیلی بخصه خوبی داره راجع به مشیقه صدو و راجع به خود من لای احضار و مشیقه رو مفصل شعب داره خیلی زخمت کشیده من نه مجموعه ای کسانی که صدو از اونها نقل کرده باید طریق در مشیقه به اونها نهبانه از فرد این سلسله مشیخه 100 حالا مشیخه ختم شده شده تقریبا مشیخه و مشیخه چرا نمی حواله در صدوق ابتدا به اسما افراد میکنه وقتی این مشیخه ای داره در مشیخه میره ماکان فی ان فلاه طریق ذکر میشه بله. مشیخه بونه مشیخه در اونجا طریق ذکر میکنه یه وقتی من هرجیس سرگوشی حساب کردم من دقیق به نظرم مورد بود حدود 600 مورد ایشون طریق کرده حدود نبرد مورد هم ذکر نکرده حالا پیدا کردن اینها نکات اونها یه بحث لطیفیه حدود به ذهن من میاد ولی یادم راست خیرش تاریخش دیگه‌ناگهی اولین به نذر امامی نوری نام برده که مصادر میذونه که نام برده یکی که اسم بود حاجی تو خاطر مصادر یکی یکی مشایخ ایشان که ایشون تاریخو اونها نظر یعنی افراد نه ایشون افرادی که حدیث نظر احمد بن از اونجا احمد بن از اونجا همونوزن طریق بیشان نداره و حاجی نوری به نظر هم 5 یا 96 نفر رو اسم برده احتمال بیم برداشون کرده بوده به اون سال ها که ندار کرده آنها حدود 90 نفر قد محترم بگیم حدود 90 نفر در کتاب فقید نام اینها برده نشده معلوم نیست صدوق از چه طریقی روایات اونها رو, رو نه رو کرده اون چه جهات مختلف بحث داره من یکی دو نقطه در هر جایی که دو نقطه میگیم که باید مجموع نکات با هم جمع اون چی که به ذهن میاد الان به ذهن ما چون ما دیگه خود صدو هم نرشتم مشایخ هم نرشتم به ذهن میاد دو نقطه شده اساسی باشه در ارسی مبردن نکات دیگه هم داره حالا این دو نقطه شاید اساسی باشه یک نقطه شده این باشه که این افراد داره ای کتاب بودن صدوق یک طریق بین ها به کتابشون داره چون این مسلمات که صدوق کتاب بینه فهرست داشته پس کردیم فهرست طریق شخص به کتاب اصحابه وقت مشکلی افقید طرق ایشان به روایات هرش هاسه دوتا رو با همینگه فهم بگذارید چون بعضی ها خیالی آز... ها چون مرموم شیخ توسیم بیشتران تو آخر و استفسار مشیخه داره لیکن این مشیخه ای که داره طرقه ایشون به کتبه الا حالا مواد خاصی که کتب نیست که احتیاج به توضیح داره بعضیات یا که صدوق هم اگر افتدا به اسم کسی بکنه طریقش به کتاب این مشیخه نه این درست نیست این شوالد و قطعی معاید این مفلد اسم شوالد زنی ظاهرن ایشون وقتی به اسم شخص افتدار میکنه در مشهر میاره مشهر است به روایت میشه، به روایات اما خود ایشان فهرست هم داشته بکنه فهرست طرق شیخ فروق است به کتب ارزها و نظام ممکنه حرف کردم اینا کمیش گفتی با قولو نارف علمی گوفه ممکنه مرحوم صدوق بن یاری اسم نبرده و ابتدا به اسم اونها کرده از کتابشون گرفته و در فهرست طریقش به کتاب اونها نوشته و رضا تو مشیخه اسم نبرده خب این شواهدی هم داره اینطوری که ممکن باشه مثلا ما الان میبینیم ایشون از مثل یونس بن عبدالرحمن با اون جلالت خودش نام نمی‌کنه و طریق ایشون نام نداره احتمال بسیار قوی داره که از کتب یونوسه از کتابش نمید این یک شاهده که ازدهی از افرادی که ایشون ازش نمید میکنه لازم مشاهیر و اجلای اصحابم و اصحاب کتب هست یک شاهدی هم اینه که الان ازدهی از افراد و صدوق به اینها تریق نداره اما همون فرد در کتاب فهرست نجاشی یا فهرست شیخ توسی آمده از آر صدوق آمده شیخ توسی یا نجاشی به, تل... به کتاب او از طریق شیخ صدوق کتاب طریق دارن احتمال و خوب طریقی که اونو دارن مال فهرست شیخ صدوق احتمال میدیم آره اگه فهرست صدوق رو جمع بکنیم شاید یک مقدار بهتر بشه فهرستش امنال که جمع ودی کرد بقیش خیلی موشده به ما نرسید کتاب الان یا حالا فقط من الان دو تا احتماله که یک کمی روش کار بشه مسائل دیگرم اینجایی مواهز دیگرم دیگر دیگر دیگر داره به این مختصری میز. یک و این احمد بنه صاحب کتاب فکرس میکنم تو طریق مرموم نجاشی هم نگاه بکنم به نظر اسم صدوق هم باشی احمد بنه صاحب کتاب هست اما شواهد نشون نبید. کتابش اینقدر مشهور باید در اختیار صدوق بوده این شواهد فیلن اینقدر نیست این یک نکته دوم این است که گاهی اوقات ممکن است یک حدیثی در قم بوده و کتاب فوق عاده مشهور بوده یک حدیثی نه اون کتاب بوده صدوق از اون کتاب نقل کرده دیگه از وقت شهرت داشته یعنی کسی در اون قوم زمان بوده بیدونستی که این از کنی کتاب از کتاب برگیه لذا احتیاج مثلا به خاطر وضوحش احتیاج پیدا نکرده تریخ خودش رو نیسته بگمید همین روایت رو مرحوم صدود در اقابل اعمال آورده در اقابل اعمال این حدیث شماره شیش از باب سابق شیش از باب به سا چه رو پنج فی اقابل اعمال انعبی هم محمد ابن یحیاء هم محمد ابن احمد این محمد ابن احمد همون سال نوازه رو حکمه از توضیح شده. به احتمال اولی همین حدیث تو کتاب محمد بن احمد بوده به احتمال بسیار قوی که می‌کنه در کتاب این بوده این کتاب خیلی مشهور بوده واسه اینکه شما یک مطلبی بر از نحرج بالغه می‌بینی قاضی علی یا نحرج بالغه تو نحرج بالغه تو نحرج خیلی مشهور دیگه که قاضی علی و فی نحرج بالغه قاضی به خاطر شهرت کتاب دو نکته به ذهن ما آمده برای اینکه صدوق یا حالا یادش رفته یا همدم طریقش شد بعضی از افراد نه باقی مثل همین احمد ابن نزدی که در اینجاست اونی آخر توضیحش البته هر دوش نقطه لکیفیه یکی این که در فهرستش بوده و کتاب پیشش موجود بوده لذا اسمش نبرده. یکی این که نه یک کتاب مشهوری بوده در اون کتاب مشهور این حدیث وجود داشته و مخصوصا این کتاب در قومت کاملا مشهور بوده چون ایشون احساس میکرده که مثلا احتیاج رو زفت نداره این در اونجا از کردم روایت در کتاب محمد احمد نوازر به حکمه هستیم برای حدید شناسی خیلی لطیفه مثلا کارهایی که صدوق کرده هست کردم حدود نود اسم هست که مشکل داره که با کار رو من یک دو تا مطلب رو از کردم و من هم هنوز به کار احتیاج به کار داره اینشار محمد بن احمد در اون سند بود ان علی بن اسماعیل. که ما امس کردیم شباهد ما نشون بوده علی بن اسماعیل اشعریه از اشعری قومه ایشون جز کسانی است که به کوفه آمده و مسابه رهده اصحاب ما رو به قوم اورده یکی از ناقلان آسل نه رو نقل نشده من در در اول آقین کشید و عرض کردم ما یه مشکلی داریم ادهی از مشایخ قوم داریم که واقعا احساس من اجلان اما معلومات ما در مسادر موجود در این که و احتمال داریم مثلا سرش این بوده که مثلا اینها اگر یا سال کتاب نبودن یا سال کتاب بودن به نجاشی نرسیده و شیخ هم قیلی متعرض احوال اینا نشده ما تو قوم از مشایف و از اسمان مشبه داریم این یک نقطه ایست که ما در بحث اول ورم گفتیم من چند بار این مطلب رو تذکر دادم. ما مجموعی مسابق رجالی و فهرستی ما که در قرمه های مثلا پرست رجال برقی که در قرمه سوم بوده با پرست کن رجال کشیدی در قرمه بوده با رجال ابن هزاری که حوال قرمه پنجم بوده ولی اونم قبول بود و رجال و فهرست شیخ که در پنجم بوده و فهرست نجاشی در فرمه پنجم این کل مسادر ما سو رجال و هم فهرسته خبی بی کمه این کل مسادر ما اینه این مسادر نسبت به بحث های حدیثی ما کمه چند بار از کردن با این مسادر شاید ما بسیم 20 درصده احادیث ها رو پنرید بکنیم و عرضیاری بکنیم کم خیلی کم یه مشکل دیگه این برای اطلاع ما بر مشایخ هم کمه این هم دیگه هم داره حدیث یک مشکل محضا مثلا تیره مشایخ قوم او معلومات ما کمه مثلا صدو خیلی نهارمونه کنه خیلی ما مشایخ قوم داشتیم متاسفانه معلومات ما مثلا این معلوماتی که من مسادر به شما ازگردن. از کردم قرن سوم، و چهاران و پنجم اینها رو جمعی جور کرده و دست بندی کرده علامه تو قرن هشتم. هفته و بعد سال هفته من کلانه ارد کردم الله و وفاتش هفته و بیست و شیچه مثلا ما نبید خلاصه دیشون سه هفته همیز آخرش نمشه به سالش هم نظام بید هفته حالا قرن هشتم قرن هفته خب کتاب علامه یه جلده اصلا این توش این مشایخ نیستن یعنی کتاب علامه تنها کتابی کتابیست که بعد از اون کتب و کتاب اون ناود بخاطه این زیاد غلط قلود داشت یا میگن نسخه غلط بوده یا نسخه غلط کردن آن نمیدونه چی بوده خیلی جا نید کتاب را ادلام از این جنب خب جمعون جورتر دردشان او خود یک کتاب کچی تیه به درد کاره وحث کردم تقریبا بعد از قرن دوازده ها مثلا ایش رو بدایی آتش هم این ج اینا خارج شدن از اون و بعدم دنبالش کتاب های دیگه مرمون وحید به باهانی دیگران شده اول وحید اما نوشتار و از این سرمال مرمون از رویدیست اینا از این بحث خارج شدن با تمام این کاری که شده تا زمانی که ما هستیم که مثلا پرسنان های خویی یا مثلا قاموس مرموم های توست هنوز هم ما باز در مشایخ دیگه داریم ما مجموعه معلومات مراجع به علی بن اسماعیل خیلی کنم و که احساس ما اینه که ایشون جزا شخصیت و به اشعار و یکی از حلقه های اتصال ما بین کوفه و قومه یعنی یکی از چهره های خوبی یه مرحله حساسیه دیگه مرحله مهمیه مسادر اصحاب رو از کوفه به قوم یکی از چهره های ایشانه علی بن اسماعیل اشعریه و می زاهد. شاید اسماعیل پدر انسان ها که مثلا سرزه بود زیاد، سدیغا، سدیغا اینها میگفتن علی گفتن سدی، سندی بن سدی برادری یعنی از پدرشون محمد بن اسماعیل یا محمد بن سندی هر دوشون در حد خودشون شناخته نیستند انصافا معلومات ما ما گاهی در روایات به این واقعیت درمیخوره که افرادی هستند که معلوم میشه مقامات واقعیشون خیلی بالاتر از مجموعه معلومات ما کمن مرگوم هم سلام به شما عرض میکنم نه تا زمان علامون تا همین زمان خودمون تا خامونس و تا مهان جماعی خیلی جمع کردن اصلا خامونس خیلی زیاد تا خود مرگوم آیه آجی نوری و مرگوم خیلی همه اینا رو با هم نبیدیم وازن منوز کرد به هر حال اون چیزی که ما اضافه و کلمات اصحاب که گفته شده اونی که من خودم به شدیدم مرگوم علیه نسمایی یکی از, و از شخصیت های بود بوده. و یکی از شعون اصلی ایشان هم انتقال های کوفه مثلا اینجا کتاب احمد ابن نظر از اینجا ایشون سفر وجهه و قلبه به قوم که در کتاب محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی به نام نوادار حکم آمن. این راجعه من خود من همایولم به این وجه دوم بیشته یعنی همایول خود من با جوابت حدیث شناسی و علوم دشان و سیاست به نظر میاد که صلوخ طریع ازش ننویشه از کتاب یعنی کتاب مقابله شد شهره کتاب میلیون سر فلسفه‌ها در میاد در اومیاش که کتاب احمدنژ النظر، احمدنژ است که علی بن اسماعیل اشعری در نوابر وجود داشته و از دیدید بهتون همیشه در کتاب نوابر حدیثی که در نوابر هست میاد احتمال یک و در کتاب اقابل اعمال آمده عبادتن کسیر نقوان در کتاب صدو در ای نسخه ای که چاپ شده عباد ان کسیر نقوان آمده در کتاب کتاب در کتاب اقابل اعمال عبادتنه که معلوم میشه نسخه مرموم سا بسایل هم همی طور بیده آه خویی هم آه چونه نگردن تو عبادت نکسیر نبا بیام آنها هست عبادت نکسیر ندارم در تو موجب برگردی موجب مرموم استاد عبادت نکره وقت تحجیم که میکنی این کتاب فقیه چرا آقای آره خویی استخداش نفرمونه آقای آره خویی نباید تو عنوان عبادت ان نبا استخداش کرد دارم نه حدیث اوله هست که را فقیه نه عبادت نکسیر لچنانی خويه عقاب اعمال رو استخراج نکردن ننوشتند دیگه ابن تو اب عقاب الاعمال عباد بن تو کتاب فقیهی که الان موجود و پیش ما جا شده عباد ان کثیرن مروارید به کنید احتمالاً از اینکه صاحب وسائل نوشته نسخه صاحب وسائل همین طور بوده عباد نکسیر کثیرن و ما عبادر کثیر نبوا نداریم عبادر کثیر داریم متصفه نبوای نه هسته فروش نبوا که نه هسته نبوا کثیر نکسیر نبوا نداریم چون حسای خورمه رو جمع بر برای تنور رو گره تا علف حیوان چون حتی دروازه از امام سجیات که خورمه که مخوریم دانش نندازیم اونه اطراحه این خورما، چون دانه خورمه محصب داشته و بعد از کتب قدیم نوشتن که برای علف دوا خالص معنا حیوان میخورن میخوره چی خاطر فرارقهجوری بوده و یکی هم برای سوزنده در زیر تنور به اصطلاح علایخانه احتمالا ولی علم و این خرابی در کتاب همون نواظر حکمت بوده اصل خرابی در اونجا بوده احتمالا احتمال قوی داره در اونجا به هر حال ثوابش عباد ان کثیر نواه صحیحش اینه این عباد ان کثیر اونجا ما این توضیح ندیم اشتباه شد باید اینجا سدارو کردیم علایه حاله ممکنه عباد انیه حبوبینا ها باشه ان کثیر نواه کثیر نواه جزبه به اصطلاح زیگی هاییست که مثلا هم ایمان رو به اون طرف هم داشتن هم بحله به داشتن ان عبی جعفر قال سهل سعبا جعفر در رواست دیگه ایمان ایشون مذمت شده کسی رو نبرا قال سهل سعبا جعفر این کبائر فقال کل ما او عدالله عليه النار این هم راجعی این حدیث به فوزیه میخواست دیم که سابقه نخوند و به اصنابی ان عبی خدیقه سالمین و مکرم از کردن بیشون اینا و به اصنابی این ها تو همین بابه همین جنده سبون بابه کبائر د بقیرا حالا اون حدیثی که شما رو آورده احادیث دیگری هم آورده همین همینجا مثلا ان ابی حدیث صادق مکر ان ابی عبدالله قال الله علی و علی اوسیه من ثوابه نمیده بران ما او ادله نه. یا مثلا قال رسول من قال علی مال عقل ثلیت و من النار این معرهه من النار رو تشبیه کردن به آتش یعنی در آتش خواهد از کردن گاهی شده این حدیث مبارک حدیث متواصلات مقال علیه مالم امور البته بسید من منطبه و علیه متحمدن این بحث اگر عالی نادشون باشه ما به مناسبتی در لحظ حجز خبروار متعرض شدیم یه بحث نسبتا سنگینی هم اهلشون سنت روش دارن ادویشون هم از صحابه بزن نه این داره خیابیم برنام از صحابه این بحث بحث است که اطلاع پیدا بکنید اونجا متعرض شدید بعدشون حتی صحابه مثلا مثل زبه این هم می گفتن که پیغمبر فرمون منکر به حلی فلیت ها بردن متحملن لذا احتیاط میکنن حدیث زیاد از پیغمبر نحل نکنید میکنون شاید رو گردن بیان اون, اون اما در متونی که ما دارید مشروط این محضمان منکر به حلی متحملن. این نزا از صحابه موجود بود تا زمان ما بلکه کتاب اباها عرسون محمود عبورایی از الهری هاست که خیلی تمایل به حلقه داشته خیلی مورد لحمتن میچاره سنی های مصر قرار گرفت و حتی ترکشون داخل سنگش میشودن یک کتابی هم در رد ابو حاره این شبه حاره که مرد صالحی نیست هیشون یک بحثیم داره عقا علیستان المحمدیه ترجیح میده اون مطمی که من کذب علی نه من کذب علی متحمدن تو این توزوی های ما متعاربید این به شما ارزی بکنم این از دمان صحاب دعوی شروع شده که مطمی این حدیث که شد این حدیث متواترم هست مطمی این حدیث متواتر چیه؟ من کذب علی یا من کذب علی متحمدن حسن اصطلافش اون است حالیت هم بر برد و مقعد چون یعنی یک نفری توی بحث های حدیث شناسی یک صحبت راجعه می کنید یکی که حدیث شده جا دیگه هم داره که حالا متعرض نمیشم جاش نید. در اونجا داره که در کتاب حدیث سنت یک نفری رفت در یک جایی مثلا زن اینی خواست بشتیم رفت اونجا دروغی گفتم وکیل رس مورد داشت بعد آمدن من شخصی آمده پیغمبرو رو برو برسه بعد من نیست و از پیغمبرو من یا مثلا برگو روزی یا شبی در خیمه خیلی بود خیرش آتش بیره خودش سوخت بیچاره و خیزا پیغمبرو من قاله هر من کرد به و، یعنی این می سوزه. این دقیقا این سوختن در دنیا برگوی حالا مرمون از یعنی اگر ما راجع به اون منان نرو بدهنا یا آفت گرفت میشه. در فرمودید اما چون روایت شاهدش اینطوریه که پیغمبرونه که درو گفته این میسوزه آتش میگیره و بعد آتش گیر تو خیلی خوب نوشته نارضا شد ما اینو تو سوال ما ظاهرا نداریم چون واسه ما نداره. اونیکی که نداریم فعلا متحرز میشه. بعد ایشون احادیث دیگر یا دیگر داره دیگه بخاطر اینا متحرز میشه چون خیلی طولانی شده که حدیث برده خبه در اینجا مثلا در علم داره اقوه الوارده نهنالتباه لعن الله جعلالقاقه اصیم شقیه بقید کردی مخواستم همین نقطه رو ارزو کنم که ایشون در این کتابش مفصل در جعل تر جعلالتباه در کتاب فقیه مجموعه ی روایت قیل روایتی که کباید درش آمده یک دونه مثلا در بعد این چیز به اطلاق برش انابین دیگه برد بعد مرحوم صدوق در مجموعه کتاب هاش اینجور در اویون اخبار رضا به اصانی دید اینل حضرت نشازان اینل رضا فی کتابی اینل مهم افیان یه صحبت ناجیب به کتاب شرایق اینل هم یکی دیگه گفتم یکی دیگه هم داره این یکی دیگه چنده اینجا هم آمده کوادر بله این بله. وقتی این کواع رو نداری کرده این کواادری که اینجا آمده این درست نیست این مجموعه استفاده از شواهده است نه اینکه این حاف مع او از و این کتاب هم درست نیست، مرهوم یا مرهوم نامرهوم ابن شعبه در حرف الاغولی زهب کرده این حرف الاغول و این سنت با جداگانه صحبت میشه بعد ارز کنم خدمتونی که روایت 24 هم از خلیل عبیقاره این روایت عبیقاره ارز در کتاب احل سنت هست مشروط این روایت بعد وجود داره در شماره 36 یک خبر مفصلی از احمش نقل کرده فی حدیث شرایدین ارز کرده یک رساله بوده سه چهار صفحه. در اون زمان این ونرابین حالا خدا اینا برم داشتن ببین یه حدیث شرایدینی که ایشون نقل کرده شبیه اینم از داده داده احمده منطردات اینا هیچ کدوم حدیث نیستن رساله هایی هستن که نسبت داده شده به احمد علیه مسلم اینجا هم این زیاد داره حدود بیست داره تباله رو و این دو سال اینو، اون یکی فضل نشازا یه اموری داره که مثلا اینجا داره ضرب اوتار اینجا هم ضرب اوتار رو جزوه تباله رو تو بحث قناه اگه یاد کن باشه متعبس شده تو این دو ساله آمده رساله فضل نشازا و رسالهی که به اسم شرایطی و عرمش نسبت شده اما که مهران از بزرگان اهل صحبتش چین رساله‌ای نداره این ظاهراً مثلا بعضی این برآدیشا ای. نوشته درو منتشر شده بعد راه انتشارات ای یک رساله‌ای در این رساله‌ای که هم هست اولش مبدا کلام عقاید برآدیشا در دوره خیلی مختصره در اصل اجازه داده که بزرگان کی داره. مثلا نه این رساله ثابته نه اون رساله ثابته هر دو رساله ثابت نیستن بلکه که عدمش ثابتن لیکن مرحوم صدوق این رو اوورده یعنی مرحوم شیخ صدوق رزانده تا بعده. رساله احمش روزه که از رساله فرزان شازان هم توی اون احوال در احوالات در اون چیمه این رو بردارده این راجب کل برد ما راجب و دیگه فرزان شازان بریم جنباله بحث کنیم تمامش کنیم بحث سلام <سؤال>